آقایی که به کلاهش نوار سیاه بسته بود سوم جویه بود سنگینی هوا و گرما تحمل ناپذیر بود برای ولچانینوف این روز پر از دلواپسی بود تمام صبح را با درشکه و پیاده راهپیمایی پیمایی کرده بود و شب انتظار داشت با مرد کارامدی که وکیل دعاوی و عضو مشاور دولتی بود فورا ملاقات کند میخواست او را سرزده در ویلایش که واقع در کنار رودخانه سیاه بود دیدن کند. بالاخره در حدود ساعت پنج داخل رستورانی شد که ظاهرا مشکوک به نظر میآمد اما فرانسوی بود و در چشمنداز نفسکی نزدیک پل شهربانی واقع شده بود. در جای معمولی خود پشت میزش قرار گرفت و غذای هر روزیش را سفارش داد. غذای را که او می‌خورد یک روبل ارزش داشت پول شراب علاوه بر این بود این کار را فداکاری می دانست فداکاری و گذشتی که زندگیش به طرز ای به او اجازه آن را میداد. در حالی که از خوردن این غذای ارزان متعجب بود با وجود این هر بار تا آخرین ذره غذای خود را با اشتهای عجیبی می انگار سه روز است که هیچ چیز نخورده است گاهی که به اشتهای خود دقیق می زیر لب می اثر ناخوشی است اما امروز با کچخلقی بی ای پشت میزش نشست کلاهش را با عصبانیت به گوشه پرتاب کرد آرنجش را روی میز قرار داد و به فکر فرو رفت اگر در این لحظه آقایی که پشت میز پهلویی غذا میخورد کمی زیادتر تحریک شده بود یا اگر پیشخدمتی که در خدمتش ایستاده بود به اولین کلمه حرفش را نفهمیده بود او که در مورد لزوم آداب تربیت را میدانست و خونسردی تکبر آمیزی داشت مثل یک سرباز پروسی جنجال زیادی به راه انداخته بود و شاید افتضاحی هم بار آورده بود برایش سوپ آوردن قاشق را به دست گرفت اما ناگهان حتی بی اینکه بتواند قاشق را از سوپ بیرون بیاورد آن را به روی میز پرتاب کرد و ناگهان از روی صندلیاش تکانی خورد فکری ناگهانی یک دفعه به او دست داد خدا میداند به چه جهت در این لحظه به یک نظر علت استرابش را فهمید این استراب عجیب و مخصوص که سه روز بود او را شکنجه میداد و رهایش نمی کرد. و خدا میداند برای چه نمیخواست دست از سرش بردارد در یک لحظه همه چیز مانند پنج انگشت دستش برایش روشن و واضح شد مثل آدم الهام شده ای زمزمه کرد همه اینها از این کلاه است تنها این کلاه گرد لعنتی با نوار سیاه وحشتناکش ناکش علت همه چیز هاست به فکر فرو رفت و هرچه بیشتر فکر می کرد بیشتر در هم می شد و بیشتر این حادثه برایش تعجب آور میگردید در حالی که به خودش نمی توانست اعتماد کند اعتراض کرد. اما راستی این یک برخورد اتفاقی است؟ آیا در این مورد چیزی که شبیه به یک برخورد باشد موجود است؟ موضوع از این قرار بود. در حدود دو هفته قبل راستش درست به خاطر نداشت. اما به نظرش می آمد که دو هفته می شود. برای اولین بار در کوچه، در محل طلاقی پادیاچسکایا و مچانسکایا، آقایی را با شپایی که نوار سیاه داشت ملاقات کرده بود. این آقا مثل دیگر مردم بود. هیچ چیز به خصوصی نداشت، با عجله گذشت، اما اندکی به ولچانینوف خیره شد و ناگهان و به هیچ علتی اندکی دقت ولچانینوف را به خود جلب نموده بود. در هر حال صورتش به نظر ولچانینوف آشنا آمد. واضح بود که سابقا در جایی با او ملاقات کرده بوده است وانگهی من در مدت زندگیم صورت هزاران نفر را دیده هم نمیتوانم همه را به خاطر داشته باشم با وجود اولین تأثیر وقتی بیست قدم رفت مثل اینکه دیگر این برخورد را فراموش کرده است اما این تأثیر به طرز مخصوصی به شکل یک تحریک خود به خود در تمام روز او را رها نکرد و اکنون بعد از دو هفته به طور وضوح همه اینها را به خاطر می آورد همچنین به یاد می آورد که آن وقت نفهمیده بود که این تحریک از کجا ناشی می شود به طور نامحسوسی این را درک کرده بود که فقط یک بار توانسته است میان این برخورد و بعد خلقی چند روزه خیش رابطه برقرار کند اما این آقا خودش پافشاری داشت که به خاطر ولچانی بیاید فردا در گردشگاه نفسکی باز به ولچانی برخورد و از ناب به طرز عجیبی به وی خیره شد ولچانی توفی انداخت اما فورا از حرکت خیش متعجب شد درست است که به از این صورت فورا تنفر و بی ایجاد می کنند. نیم ساعت بعد از این برخورد متفکرانه زمزمه کرد بله راستش من او را پیش از این هم جایی ملاقات کرده با بدخلقی بسیاری سر شب را گذرانید و شب خواب بدیدید هرچند در تمام شب چندین بار این برخورد را به خاطر آورد با وجود این به فکرش نرسید که این قم و تازه و مخصوص علت دیگری جز این آقای ازادار ندارد حقیقت این که این موضوع پیش پا افتاده ای او را دائما آزار می دهد خشمگینش می ساخت اگر فقط چون این فکری به خاطرش رسیده بود و علت ناراحتی خود را در این موضوع میدانست بسیار خجلت زده میشد. دو روز بعد در میان جمعیتی که از کشتی بخاری در کناره رود نوا پیاده میشدند باز آن دو به یکدیگر برخوردند. در این بار سوم، ویلچینوف حاضر بود قسم بخورد که این آقایی که شاپویش علامت عذا داشت و در میان جمعیتکششانده می شد او را شناخته و خود را به ویرسانیده سانیده بود. به نظرش آمد که این مرد حتی جرأت کرده بود دستش را به طرف او دراز کند. شاید حتی اظهار بشاشتی هم کرده بود و نامش را بر زبان رانده بود. اما این را ولچانینوف به طور وضوح نشنیده بود. وقتی درشگه گرفت که به سومعه اسمولنی برود، با خشم و غضب اندیشید که آخرین آدم پست کیست؟ و اگر راستی مرا میشناسد و انقدر مایل است به من نزدیک شود برای چه به طرف من نمیآید؟ نیم ساعت بعد با وکیلش با حرارت گفتگو می کرد اما در مدت اصر و شب از نو یک دلواپسی وحشتناک بیش از پیش خیالی به او روی آورد. هنگامی که در آینه خود را میدید با استراب از خودش پرسید آیا این امر از زیادی سفرانی است؟ این؟ سومین برخورد بود بعد پنج روز پی در پی مطلقاً هیچ کس را ملاقات نکرد و از آن آدم پست خبری نشنید اما گاه گاهی آقای را که به کلاهش نوار سیاه بسته بود به خاطر می‌آورد ولچانینوف این واقعه را به یک نوع شگفتی تلقی می‌کرد آیا از دست او که شاید هم او کارهای زیادی در پترزبورگ دارد اما برای چه از است حتماً مرا شناخته است اما من او را به جانای آوردم و اصلاً برای چه این اشخاص نوار سیاه می بندند؟ این کار اصلاً بهشان نمیآید خیال می اگر او را از نزدیک ببینم بشناسم چیزی ذهنش را مقشوش می کرد. مثل هنگامی که انسان در جستجوی یک کلمه فراموش شدهی در حافظه خود می و با تمام قوا جستجو می کند. درست است که آن را به خوبی می‌شناسد، می‌داند با آن آشناس و می‌داند چه معنی می دهد. فکرش در اطراف آن دور می‌زند، اما بیهوده در طلب امر محال است چون آن کلمه به هیچ قیمتی نمی‌خواهد به خاطرش بیاید خیلی وقت پیش بود و جایی بود در آنجا بود به جهنم آنچه بود و آنچه نبود ناگهان با خشم فریاد کشید آیا این آدم پست اینقدر ارزش دارد که انسان به خودش زحمت بدهد و خودش را خشمگین و شرمنده سازد با وضعی وحشتناک به خشم آمد اما شب وقتی که ناگهان به یاد این خشم وحشتناک خود افتاد ناراحت شد مثل وقتی که کسی مچه او را در حین ارتکاب گناه کبیری گرفته باشد او متعجب و درهم شد باید دلیلی موجود باشد تا من اینطور ناگهان به علت یک خاطر خشمگین شوم. و دیگر فکرش را دنبال نکرد و فردا باز خشمش بسیار شدیدتر شد اما این بار به نظرش آمد که دلیلی دارد و کاملا حق دارد آن چهار رامین ملاقات با چه جسارتی به وقوع پیوست؟ آقایی که نوار سیاه به کلاه داشت، مثل اینکه از زمین رویده باشد، دوباره ظاهر شد. درست در همان ای که ورچانینوف میان کوچه، آن عضو شورای دولتی را گیر آورده بود. مردی که به او بسیار احتیاج داشت و او را تا خانه کوچک یه دنبال می کرد. این مرد را بسیار کم می شنا. اما وجود او را برای موفقیت در کارهایش ضروری میدانست. این مرد برای حفظ ظاهر از ولچانینوف پنهان میشد. از ملاقات با او خودداری میکرد، ولی دوباره به چنگش می‌افتاد. ولچانینوف از اینکه که بالاخره او را گیر آورده بود خوشحال بود و در کنارش به راه افتاد. قدمش را تند کرد. به صورتش خیره شد و با تمام قوا میکوشید کوشید فکر این پیرمرد زرنگ را درباره یک موضوع به کار بیاندازد. بعد صحبت را طوری شروع کرد تا شاید آن کلمه ای را که ولچانینوف مدت ها بود میخواست از دهان او بیرون بکشد اما این پیرمرد زرنگ حساب کار خودش را داشت فقط لبخند میزد و خاموش بود و در این لحظه باریک بود که ناگهان نگاه ولچانینوف در پیاده روی مقابل به آقایی که به کلاهش نوار سیاه بسته بود برخورد ایستاده بود و آنها را با دقت ورانداز می کرد واضح و روشن بود که کمین آنها را میکشد. حتی مثل اینکه که پوسخند هم میزد. زند ولچانینوف که اکنون از آن مرد خداحافظی کرده بود و عدم موفقیت خود را نتیجه ظهور ناگهانی این مرد دریده می دید با خشم فریاد کشید الهی مرد شورش ببرد مرد شور ببردش در کمین من است مرا دنبال می کند پیداست حتما کسی او را برای این کار اجیر کرده است و و خدایا دارد پوزخند هم میزند به خدا قسم لحش خواهم کرد چقدر بد شد که احسا را هم نیست یکی خواهم خرید این کار به همین جا ختم نخواهد شد آخر او کیست من فقط میخواهم بدانم کیست باری درست سه روز بعد از این برخورد چهار روم همانطور که شهر دادیم وِلچانینوف را در این مهمانخانه میابیم که کاملا گرفته است و حتی کمی هم مضطرب به نظر می‌رسد و با اینکه متکبر است بایس به این موضوع اقرار کند بعد از اینکه همه کیفیات را سنجید با وجود همه پوچی و بیهودگی این عقیده در آخر مجبور شد بپذیرد که علت غم‌آلودش علت اضطراب عجیبش علت ناراحتی این دو هفته اخیرش چیز دیگری جز این آقای عزادار نیست این طور استدلال می کرد درست است که من آدمی مالی خودیایی هستم و به این علت حاضرم یک مگس را به صورت فیل درآورم اما با این همه آیا برایم دشواری ندارد که همه اینها را زائده‌ی تخیل محض خود بدانم و اگر اولین خیال بتواند انسان را کاملا از پا درآورد آن وقت است که آن وقت و اما به راستی در برخورد این روز یعنی پنجمی که کاملا ولچانینوف را آشفته ساخته بود برعکس فیل با کمی اختلاف جلوه مگس را داشت آن آقا مانند دفعهای دیگر به تندی گذشت اما بی اینکه به ولچانینوف خیره شود و بی اینکه وانمود کند او را میشناسد برعکس چشمانش را به زیر و مثل این بود که مایل است کسی به او توجه نداشته باشد. ولچنینوف برگشت و با صدای بلند به سوی او فریاد کشید. اها شما مردی که نوار سیاه داری حالا غایم میشوی. بیست کیستی؟ این سؤال و همه این داد و فریادها حقیقتاً بیهوده بود. اما ولچنینوف این موضوع را فقط بعد از فریاد کشیدن فهمید. با این فریاد آن آقا برگشت، لحظه ایستاد، مشوش شد، خندید، خواست چیزی بگوید، حرکتی کرد. یک لحظه به نظر مردد آمد، بعد ناگهان نیم چرخی زد و بی این که به پشت سر خود نگاه کند، فرار کرد و ولچانینوف حیران او را با چشم دنبال کرد. با خود اندیشید؟ اگر این همان مردی نیست که مرا دنبال می کند پس، اما نکند که برعکس، من دارم او را دنبال می کنم. اصل موضوع در اینجا است. شامش که تمام شد، با عجله به طرف ویلای آن عضو شورای دولتی روان شد. اما او منزل نبود. به او گفتند، از صبح خارج شده است و خیلی بعید است که پیش از ساعت سه یا چهار شب برگردد. زیرا برای شرکت در جشن ای در شهر خواهد ماند این موضوع به قدری موجب رنجش ورچانیوف شد که با اولین موج خشم تصمیم گرفت برود و او هم در این جشن سالیانه حضور یابد. هنگامی که به آن سمت به راه افتاده بود، فهمید این عمل کمی کارش را به تأخیر خواهد انداخت. در نیمه راه، کالسکه را ترک کرد و پیاده به طرف خانه مسکونی خودش که نزدیک تئاتر بزرگ واقع شده بود، رهسپار شد. به راه رفتن احتیاج داشت. برای تسکین اعصاب کوفتش به هر قیمتی که بود میبایست این شب را بخوابد و بیخوابی را در هم بشکند و برای این کار دست کم میبایست خود را خسته کند. بدین طریق ساعت ده و سی دقیقه به منزلش رسید. چون راه دراز بود، راستی خسته شده بود. آپارتمانی که در ماه مارس اجاره کرده بود و از آن بدگویی میکرد، آنطورها هم که تصور میشد بدقواره نبود. در دل به خودش می میگفت همه اینها موقتی است و او در پترزبورگ از روی بی و فقط به خاطر این دعوای لعنتی مانده است. سردر آپارتمان و زیر سرپوشیده کمی تاریک و کثیف بود. اما آپارتمان طبقه دوم که از دو اتاق بزرگ و بلند و روشن که یکی به حیات و دیگری به کوچه مشرف بود و به وسیله کفشکنی از هم جدا می شد تشکیل شده بود. اتاق کوچکی که چسبیده به اتاق مشرف به حیات بود میبایست اتاق خوابش باشد. اما حالا پر از کاغذ و کتابهایی بود که ولچانینوف آنها را در هم و بر هم در آنجا باشده بود. و در یکی از اتاقهای بزرگ، اتاقی که مشرف به کوچه بود میخوابید. نیم تختی به جای تخت خواب به کار میبرد. مبل ها مناسب به نظر هر هرچند که زیاد کار کرده بودند، در اتاق هنوز چند چیز قیمتی از بقایای دوری جلال و شکوهش وجود داشت اشیای کوچک تجملی برنزی و صدفی قالیهای بخارایی اصل و همچنین دو تابلوی بسیار خوب اما بعد از آنکه پلاژی کلفت جوانش در این تعطیلات نزد خیشاوندانش به نوگورود رفته بود همه چیز درهم و برهم شده بود و به وضع عجیبی روی هم ریخته بود هیچ چیز سر جای خودش نبود و گرد و خاک همه چیز را پوشانیده بود. خیلی عجیب بود که یک دختر جوان تنها نزد مرد مجردی خدمت کند. آن هم مردی که اهل معاشرت است و میخواهد ظواهر کار را حفظ کند. هرچند که ولچنینوف از پلاژی راضی بود اما این موضوع تقریبا شرمنده اش کرد. پلاژی در پاییز درست همان روزی که آپارتمان را اجاره کرده بود، به نزدش آمده بود. فامیلی که قبلا نزد آنها کار می کرد و ولچانینوف آنها را به خوبی می شناخت، به خارجه سفر کرده بودند و او فوراً در خانه ولچانینوف مشغول کار شده بود. بعد از رفتن خدمتکارش، ولچانینوف نمی توانست تصمیم بگیرد و خدمتکار دیگری بیاورد. استخدام یک نوکر برای مدتی به این کوتاهی راستی به زحمتش نمی عرزی. وان او از نوکر خوشش نمی آمد با ماورا خواهر دربان قرار گذاشته بود که هر روز صبح آپارتمان را مرتب کند و وقتی بیرون می رفت کلید را پیش او می گذاشت اما او هیچ کاری نمی کرد پول قبض ها را وصول می کرد و شاید هم از آنها کش می رفت ولچانینوف شانه ها را بالا می انداخت و از اینکه در منزلش کاملا تنها بود بسیار خوشحال مینمود ولی آخر هر چیز اندازه ای دارد گاهی عصبانی میشد. اعصابش طاقت تحمل این کسافت را نداشت و هر بار که وارد منزلش میشد، شد مینشست. می نشست اما این دفعه به زحمت وقت این را پیدا کرد که لباسهایش را بکند و خودش را به روی تخت بیاندازد. و با عصبانیت تصمیم گرفت به هیچ چیز نیندیشد و به هر قیمتی که هست در همان دقیقه به خواب رود چیز عجیب این بود که به محض اینکه سرش به بالین رسید فوراً به خواب رفت. تقریبا یک ماه بود که اینطور به خواب نرفته بود. نزدیک به سه ساعت خوابید. خوابش مقشوش بود. خوابهای عجیبی دید. مثل خوابهایی که انسان در حال تب میبیند. موضوع خوابش عبارت از جنایتی بود که میگفتند او مرتکب شده و آن را مخفی کرده است. و اشخاصی آمده بودند و معلوم نبود از کجا پشت سر هم داخل منزلش می شدند و همگی با هم وی را متهم می کردند. ازدهام مردم به طرز وحشتهاوری زیاد می شد. اما اشخاص از داخل شدن باز نمی استادند. دیگر در بسته نمی شد و کاملا باز منده بود. دست آخر تمام توجه او روی شخص عجیبی متمرکز شد که سابقا به او خیلی نزدیک بود و او را به خوبی می شناخت. و گرچه مرده بود اما اکنون معلوم نبود برای چه او هم سرزده به خانهاش داخل شده بود. دشوارترین چیزها برای ولچانینوف این بود که نمیدانست این مرد کیست. اسمش را فراموش کرده بود و هر چه کوشش میکرد به خاطرش نمیآمد. فقط میدانست که سابقا او را بسیار دوست میداشته است. انگار همه مردم منتظر بودند، نطق قاطعی از این شخص بشنوند. نطقی در باری محکومیت یا تبرعی ولچانینوف. همه بیقرار بودند اما آن مرد پشت میز بی حرکت نشسته بود چیزی نمی گفت و از حرف زدن خودداری می کرد همه همه قط نمی شد و ناگهان ولچانینوف با دیوانگی وحشت انگیزی به این مرد که نمی خواست حرف بزند، وارد آورد و از این عمل خود لذت عجیبی حس کرد قلبش از وحشت و درد به هم پیچید اما درست خود این کار بود که این لذت عجیب را در برداشت و او که کاملا از خود بی خود شده بود ضربه دوم را وارد آورد بعد ضربه سومی را و سرمست از غضب و وحشت با یک نوع دیوانگی مملو از لذت بی منطها شماره زرباتش از دستش در رفت و پشت سر هم می نواخت می خواست همه چیز را همه اینها را نابود کند اما ناگهان اتفاقی افتاد. جمعیت فریادهای وحشت برآوردند. به طرف در برگشتند، مثل اینکه منتظر بودند و در همین لحظه صدای زنگ سه بار تنینوف نفکند به شدتی که انگار میخواهند رشته آن را از جا بکنند. ولچنینوف بیدار شد. فورا حواس خود را جمع کرد. از تخت خواب بیرون جست و به طرف در شتافت. کاملاً واضح بود که ضربات زنگ را در خواب نشنیده است. و کسی راستی در این لحظه زنگ در منزلش را به صدا درآورده است و اندیشید این دیگر زیاد شگفت آور است که صدایی به این وضوح و درستی را در خواب شنیده باشم اما با حیرت زدگی دریافت که صدای زنگ را واقعا در خواب شنیده است در را باز کرد توی سرسرا رفت نظری به پلکان انداخت هیچکس نبود متعجب اما مطمئن به اتاقش برگشت. هنگامی که شمع را رو روشن کرد، یادش آمد که فقط در را به جلو فشار داده بود و آن را نکلید کرده بود و نه را انداخته بود. اغلب هنگامی که به منزل برمیگشت، فراموش میکرد در را برای شب قفل کند و برای این کار زیاد اهمیت قائل نمیشد. بارها پلاژی برای این کار او را سرزنش کرده بود. آنگاه برای کلون کردن در به اتاق کفشکن برگشت. باز یک دفعه دیگر آن را باز کرد. نگاهی به سرسرا کرد. بعد کلون را انداخت. اما تنبل از آن بود که کلید را بچرخاند. ساعت دیواری زنگ دو نیم را زد. پس او سه ساعت خوابیده بود. این رؤیا به درجه ای او را تحریک کرده بود که نمی بخوابد. تصمیم گرفت نیم ساعتی؟ مدتی که برای کشیدن یک سیگار لازم است در اتاقش قدم بزند با همان لباس مختصر به پنجره نزدیک شد پردههای زخیم دمشقی و سپس پرده سفید جلوی پنجره را به کناری زد تقریبا هوا روشن شده بود شبهای روشن تابستان پترزبورگ همیشه اعصابش را تحریک می‌کرد و این ایام اخیر بیخوابیش را تشدید می‌نمود به همین جهت بود که دو هفته قبل این پرده های زخیم دمشقی را که وقتی خوب کشیده میشدند از نفوظ نور جلوگیری میکردند به پنجرهایش آویزان کرده بود. در حالی که روشنایی به داخل میتابید و او فراموش کرده بود شمع روشن روی میز را خاموش کند با ناراحتی زجرآوری به قدم زدن پرداخت. آن رؤیا هنوز او را مسترب می داشت. این رنج حقیقی که توانسته بود، دست خود را روی آن مرد دراز کند و او را بزند، دست از گریبانش بر نمی داشت. نه، این مرد وجود حقیقی ندارد و هرگز وجود نداشته است. همه اینها رویایی بیش نیست، پس آه و ناله ها دیگر برای چیست؟ خشمگین شده بود و مثل اینکه تمام غم و هایش در این یک نکته جمع می شدند، به فکر فرو رفت و به این نتیجه رسید که محققا مریض است. یک آدم مریض برایش همیشه دشوار بود که اقرار کند دارد پیر می و ضعیف می کردند. در این لحظات باریک امدن برای تحریک کردن خودش باز با بد جنسی در همه این مطالب اولوف می کرد همانطور که راه می رفت، زیر لب زمزمه می کرد پیری من خودم دارم خودم را پیر می کنم. حافظم را از دست میدهم، هیکل‌های خیالی به نظرم می‌آیند، خواب می بینم. صدای زنگ تنین می‌افکند، بر شیطان لعنت، به تجربه برایم ثابت شده است که این نرویه ها همیشه نشانه اینند که تب دارم، مطمئنم که تمام این داستان نوار سیاه نیز شاید رویاست، به طور حتم آنچرا که دیروز می درست بود، این منم که او را دنبال می کنم نه او درباره او قطع شعر کامل میسازم و بعد از وحشت خودم را زیر میز مخفی می کنم اصلا چرا او را آدم پستی نامیدم شاید آدم بسیار خوبی باشد هر چند که چیز زشته به خصوصی ندارد با وجود این صورتش نفرت انگیز است مثل همه مردم لباس پوشیده است فقط در نگاهش چیزی نهفته دوباره دارم شروع می کنم و از نو دارم به اون می اندیشم مرد شور نگاهش را ببرد مگر بدون این مرد لعنتی نمی توانم زندگی کنم در میان تمام افکاری که در مغزش جولان داشتند یک فکر به طرز دردناک خاطرش را آزرده می کرد ناگهان برایش محقق شد که آقایی که نوار سیاه به کلاهش دارد پیش از این سمیمانه او را می شناخته است و اکنون در برخورد با ولچانینوف او را مسخره میکند زیرا سر بزرگی را از گذشته ولچانینوف میداند و او را امروز در وضعی خجالت آور میبیند بی اراده به پنجره نزدیک شد تا آن را باز کند و هوای شب را استنشاق نماید و ناگهان از جا پرید به نظرش آمد که در برابرش چیزی معجزه سا و عجیب دارد وقوع می هنوز پنجره را باز نکرده بود که به تندی به گوشه اتاق خزید و همانجا کس کرد. در پیاده روی خلوت مقابل درست برابر منزلش ناگهان آقایی را که به کلاهش نوار سیاه بسته بود دیده بود. آن آقا صورت خود را به طرف پنجره های او برگردانیده بی حرکتی ایستاده بود. اما حتما او را نمیدید با کنج خانه را ورانداز میکرد. مثل اینکه چیزی را ترریزی می کند به نظر می آمد که دارد فکر می کند و تصمیم میگیرد گیرد بازویش را بلند کرد مثل اینکه پیشانیش را با انگشت می مالید. بالاخره تصمیم گرفت نگاه تندی به اطراف کند و بعد با نوک پا مثل یک دست با سرعت از خیابان گذشت درست همین طور بود او از در کوچک که اقرب تا ساعت سه صبح باز می وارد سرسرا شد ویلچانینوف آنن اندیشید دارد پیش من میآید. و ناگهان با شتاب و همچنین با توکه پا تا در کفش کندوید. آهسته دست راست لرزانش را روی کلونی که اندکی قبل آن را انداخته بود قرار داد. مثل مرده بیهرکتی در انتظار ایستاد و گوش فراداد و مترسد صدای پا روی پلکان بود. قلبش به قدری شدید میزد که میترسید صدای بالا آمدن ناشناس را که با نوک پا میآمد روی پله ها نشنوود. آنچه را که میگذشت نمیفهمید. اما همه چیز را ده بار شدیدتر درک میکرد. خوابی که دیده بود داشت با حقیقت قاطی میشد. ولچانینوف جسور بود. دوست می داشت گاهی خطر را تا سرحد شجاعتی که به مبالغه نزدیک بود استقبال کند. حتی اگر کسی هم نبود که او را ببیند و به تنهایی میبایست خیشتن را تمجید کند اما حالا باز چیز دیگری در میان بود این آدم مالی خولیایی، این آدم وسواسی و بدگمان کاملا تغییر ماهیت داده بود اصلا همان مرد اولی نبود یک خنده بی صدای قوی و بریده بریده از خارج میشد و از پشت در بسته حرکت این مرد ناشناس را حدس می زد خود اوست که دارد بالا میآید حالا بالا آمده است. دارد به اطراف خیش می دارد زیر پله گوش می دهد. به زحمت نفس می کشد. دارد سر میخوررد. دارد دستگیره را می گیرد می کشد زور می زند. امیدوار است که در بسته نباشد. پس میداند که من گاهی فراموش می آن را ببندم. دارد دوباره دستگیره را می کشد. پس گمان می کند که کلون خودش کنار خواهد رفت جای تحصف است اگر برگردد جای تحصف است اگر بی بازگش بازگشت کند راستش همه چیز داشت درست همانطور که او تصور میکرد کرد واقع می شد کسی پشت در بود که با ملایمت بی صدا به قفل ور میرفت و دستگیره را می کشید و حتما مقصود خودش را دنبال میکرد اما ویلچانی برای حل این مشکل همه چیز را آماده داشت با یک نوع مستی منتظر آن لحظه بود حساب میکرد خودش را حاضر میکرد میل شدیدی در خود حس میکرد که با سرعت کلون در را بکشد در را ناگهان کاملا باز کند و خود را یک دفعه در مقابل این مترسک قرار دهد و همین کار انجام گرفت به محض اینکه آن لحظه مخصوص را انتخاب کرد ناگهان کلون را کشید در را ناگهان باز کرد و درست به مردی که به کلاهش نوار سیاه بسته بود تصادف کرد